خیلی متشکرم بابت تماس دار دارم از پیشگاه شما بینندگان عزیز عرض من همراهان صمیمی و رفادار برنامه نسیم شرقی در این بخش از برنامه همونطور که اشراف دارید مهمان از و گران سنگمون دانشمند محترم علامه و استاد عالی وقار جناب حاجی زیایی تشریف و پاسخگوی سوالات بیشماری از حامیانان خودمون در خصوص طب سنتی و گیهان دارویی رو دارن پرسش های بسیار زیادی به دست ما رسیده از طریق سامانه 3625 با جتال سامان و المسلمین جناب کاظمیان پور تیه کننده محترم برنامه هم درخواست کردند که فقط در سآلاتتون از طریق ارسال پیامک به همین شما رو سامانه باشه 3625 مهمان ارجمندمون در محل خاصی ها حضوری سوالات شما عزیزان بیننده نیستن و تقاضا میکنیم و خواهش میکنیم که مطالبتون رو به صورت ارسال پیامک مطرح بفرمایید. نقطه ای رو که من باید خدمت بینندگان عزیزمون و سایر علماء مخترم علوم پزشکی عرض بکنم با احترام به جایگاه و شخصیت حتبای عالی من پزشکان و اسادید زبده و برجسته شهر و استان و کشورمون این نکتر و خاضعانه از میکنم حضور عطبای گرامی که تره سآلات گیاهان دارویه که توسط حقیل و با پرسش بینندگان خوبمون مطرح میشه خدای نکرده به مفهوم مداخله در تباوت عزیزانمون و امور پزشکی و جایگاه با اهمیت پزشکی نیست پرسش است در پیرامون گیاهان دارویی که بینندگان از منون هستند که خواست گیاهان دارویی رو به اعتبار کتب ارزشمند و نفیس و ممتازی که استاد محترم جناب آقای زیایی مطالعات داشتن از با استناد به تب استاد علیه السلام و طب رضا علیه السلام و سایر کتب جران دیگر این موارد رو ما بتونیم ان شاءالله خدمت بینندگانمون به مرور ادامه بدیم سوالات خیلی زیاده تایید هم محترم برنامه جناب آقای طازمیان پور اسخای کردن اگر نمیتونیم واقعا همه سوالات رو ما مطرح بکنیم مجموعه هایی رو که به دست ما میرسه حالا سعی اون اونهایی که تعداد بیشتری رو داره خدمت عزیزانمون arz بکنیم اما با سلام و احترام و خوشامد محضر مهمان عزیزمون جناب واجیزیایی علیکم السلام متشکرم از سازمان ناشناخته بذوارون خدمت شما هستم سپاسگزارم پیش از اینکه طرح پرسش ها رو خدمت شما داشته باشیم بسیاری از بینندگان خوبمون درخواست کردن راجع به یک تغذیه صحیح و اینکه مکمل های گیاهان دارویی چه کمکی میتونه بکنه به تغذیه صحیح هم توضیحاتی بفرمایند بسم الله الرحمن الرحیم تغذیه صحیح از نظر روایات و آیات اسلامی چند خصوصیت داره اول اینکه اون خوراکی و آشامیدنی قضا و ریس مقضی باشه محرک ها یا محرک های شیمیایی نباشه دوم اینکه سن شخص رو در نظر بگیر سوم جنسیت شخص را مرد یا زن، پسر یا دختر در نظر بگیریم. چهارم اینکه مقدار نیاز بدنش چه مقداره؟ پنجم مصرف صحیح باشه. ششم پرخوری، بدخوری، پفتلخوری نباشه. هفتم بهداشتی باشه نظیف التنظيف قوت الانبیاء من سنن المرسلین التنظيف فرمودش امام رضا علیه السلام پس بهداشتی باشه حالا بر همه اینا که گفتیم که متخصصین در داخل و خارج کشور از متخصصین داخلی متخصصین تغذیه و همچنین متخصصین بیماریای افونی و متخصصین گوارش همشون تا اینجا درک فرمودن به بهش رسیدن از این بالاتر هم در روایات آیات اسلامی هست به اینکه خوراکی و آشامیدنی حلال باشد حرام، شبهناک، مکروه و کراحت شدید نباشد همچنین طاهر باشد، پاک باشد، نجس و متنجس نباشد همچنین قیب باشد، ظاهر و باطن پاکیزه و به نفع حال و آینده فرد و اجتماع باشد قیب باشد ازا خدای مهربان در قرآن مجید عظیم کریم در سه آیه فرموده آیش در سوره بقره هست بختاب و بختاب خاص، یا ای یوهانناس، کلوا من مافی الارض حلال، طیبان، یا کلوا من الطیبات، ختاب عم نش نسبت به همه مردم دنیاست، یا ای یوهانناس، چهار آیه بعد از این ختابش خاصه، نسبت به مؤمنین و مؤمنات یا ای یوهانلفین آمنو، هردوش هم در صورت بعدرس. خطاب خاص و خاصش مرویط به انبیاء و مرسلین یا ایها الرسل کلوا مما فی الارض حلالا طيبا و اعملوا صالحا انی بما تعملون علیم پس نسبت به همه افراد بشر خدای و اوف مهربان گفته طيب خور باشه. طایب به منزله صده چون که صد آمد، 90 هشتاد، هفتاد همونایی اونایی که قبلا گفتم همه هم داره هست مثل زیر مجموعه ها تو وحث ریاضیات جدید همه اینا رو داره هست پس اسلام ولایی کسی با او باشه ها هم در زمانه هم از زمان جلوتره حالا باید محققین و پجوهشگره و متخصصا بیشتر تحقیق کنن تا این ستای بالاتر هم تصور کنن و درک کنن سلامت باشد. حالا حچی دوستایم مثال بزنم مثلا بهترین صبحانه شیر اصل یه روز دیگه شیر خورما یک روز دیگه حلیم گندم گوشت بهترین نهار یک سیخ کباب شعله غیر مستقیم حرارت چند برگ کاهو یک لیوان دوغ شیرین کم چرب بدون گاز با نون سبوسدار بهترین شام یه بشقاب سوپ رقیق به اضافه یه قاشق آبگوره طبیعی به اضافه یه قاشق پلوخوری روغن زیتون حالا اگر به عنوان ریزمقزی و به نوع کاتالیزور مجاورتی مثلا در بین نهار یک پرتقال شیرین. جذب آهن از این غذای خورده شده ده برابر میشه در بین شام لیمو شیرین. حالا چند منظور عمل کرد هم بحث فقر آهنش هم بحث کم بوده ویتامین هاش هم این که این فرد یا این مجموعه خانواده تونتون تون سرما میخوردن سرما خوردگیشون طول میکشید به خاطر فقر ویتامین سه و ویتامین B1، یک اونم ترمین شد دیگه این فرد و این اجتماع خانواده تونتون تون سرما نمیخونه سرما خودشون طول بکشید که محتاج بشن به قرصه شیمیایی مثلا استامینوفن یا محتاج ب که قدرتش و خاصیت میکروب کشیش قوی تر از استامینوپینکوداینه خب بگم نه نیاز داره به داروییایی، نه نیاز داره به داروشی می هایی تعیید فهمه شما استفاده ریزموغزی سعید سلامت باشه بسیار خب اجازه می فهمیم ترخیص حالاتی از زرگمندون رو خدمتتون داشته باشیم سرکار خانمی پیامه کردن که سه سال قبل عمل دیسی کمر انجام دادن الان دوباره درد شدید در ناحیه کمر و پای راست دارند به نحوی که اتوبای محترم تشخیص دادن باید ایشان مجددن عمل جراحی بشه و پلاتین در کمرشون کار گذاشته بشه با توجه به اینکه پوکی استخوان هم دارند و یازده ساله که از بیماری ناراحتی شبکی رنج میبرن و قرص پرتون هم استفاده می‌کنند چه گیاه رو خواستن به مناسب هست برای اینکه دردهاشون و تخفیف پیدا بکنه و شرشون بهبود پیدا بکنه این قرص کورتون که مصرف میکنن 15 بیماری میاره یکی از عوارض سوء قرص کورتون یکی از عوارض سوء قرص کورتون همین پوکی استخوان یا بیماری اسپوت اسپوترازه پوکی استخوان میاره حالا ایشون میتونه صبحانش و شیر خورما یه روز دیگه پودر سنجد با شیر بذاره. چای صبحانهشون چای سیاه دانه باشه. یعنی یه استکان یه قاشق چای خوری سیاه دونه میریزه. آبجوش روش میریزه. 5 یقی ده دیگه صبر میکنه. بعد با اصل شیرین میکنه میخوره. در بین روز میتونه از سه شیره استفاده کنه شیره خورما، شیره انگور، شیره توت یه قاشق پلو خوری کافیه در بین روز و عصرانه این قسمت ها رو ماساژ بده با روغن سیاه دانه ملایم ولی محل یه مختصری گرم شود شبا قبل از خواب یه قاشق چای خوری سیاه دونه میخوره با عصر اگر سرد مزاجه یعنی افته میتابولیسم بازال داره و اگر گرم مزاجه میتابولیسم بازالش بالا هست اینجا یک ثبومه یک ثبومه قاشوق چای خوریم. سیاه دونه با اثر میخوره دردهای التهابی مقصد و دردهای مهراهای کمری ستون فقرات پشتی گردن که ناشی از رتوبات اضافی در بدن و یا مزاجی شخص می باشه همه اینا خوب میشه کمک به درمان میکنه تو بحث پوکی استخوان که ما به جای اینکه مثلا کلسیوم دی ایرانی یا کلسیوم قظروف آمریکایی بدیم شیر خورما و پودر سنجر با شیر گذاشتیم و کمک به هر دوی اینها سیاهدانه با اصل گذاشتیم سلام باش اما بیمارنده محترمی فرمودند که 35 سالشونه خانم محترمی هستند سه فرزند دارند کاهش وزن دارند و وزنشون 45 کیلو بفرمایید که برای اینکه افزایش وزن پیدا بکنن چه گیاه دارویی مفید هست در سی دی طب المعصومین و دی وی دی طب المعصومین 12 مورد برای افزایش وزن افرادی که بیماری هزار با هزم هدوچش ز زنبوری هزال یعنی لاغری مفرد دارن اول پیش متخصص قدرت میرن یک تست. تیروید میدن نکنه پرکاری تیروید داره. بعد یه متخصص تغذیه میرن ببینن که نکنه سوء تغذیه داره یه متخصص روانشناس نکنه که رفتاراش با خودش منفیه یعنی سابونه نمیخوره شام نمیخوره بعضی رفتارشون بخواهشون منفیه یا بدون سحری عمدان هی روزه میگیره این هم اشتباهه تو روایات اسلامی بسیار تأکید شده در صبحانه صبح زود خوردن و شام رو اول شب خوردن و در روزه مستحبی واجب چه ماه مبارک چه قضا و کفاره حتما طرف سحری بخوره افطاری هم بخوره حتما مستحب معکده پس اگر کسی این ستا رو نداره پرکاری تیروید نداره سوء تغذیه نداره رفتارشان با خودش منفی نیست حالا حالا لاغری مفرد داره میگیم میتونه خودش رو درمان کن یک مثلا هفت عدد خرمای تازه با سه عدد خیار بوته ای. اینا رو دوتا دوتا با هم به بخوره با هم دیگه روایتم از شیر اهل تسنن برای همین مطلب داریم که آیشه خودش میگوید من اینقدر پیش اتباع زمان رفتم هزارم لاغری مفرتم درمان نشد آخر اومدم پیش رسول الله اینه با نارحتی میگه. آقا من اینم رفتم درمان درمان نشدم بعد پیغمبر میفرماید صلی اللہ علیه و آله و سلم پیغمبر رحمت میفرماید القفاؤ معروطا خیار بوتئی رو با خورمای تازه بخور میگه من همین کار کردم فسمنتو پس فس چاقی به نوع فربهی گرفتم نه چاقی به نوع بیماری که چاقی مفرطه چاقی به نوع فربهی گرفتم یعنی بدنم رو فرم اومد به سلح امروزی ها این یک روایت اشیه و سنین سنت داره. یک بار دیگه تو تب مکمل تب گیاهی، تب سنتی الترناتی میگن انجیر به اضافه بادام زمینی بدون پوست روی بادام زمینی چون پوست روی بادام زمینی اون صورتی آس میاره نباید بخورن تنگی نفس میاره انجیر هفت عدد بادام زمینی بدون پوست صورتیش هفت عدد بادام شیرین درختی خام هف سه تا ستا با هم به و بخوره این هم فردهی میاره وزن کم شخص رو زیاد میکنه مطلب سوم تو بحثای خوراکی ها به نوع پروتئین حیوانی به سبک گوشت سفید این هم تو کتابه هست استفاده یک روز درمیانه گوشت بلدرچین یه پرنده گوشت بلدرچین تو ایران هم تولید میشه مثلا هفته ای سه بار یک روز درمیان نهار این فرزند گوشت بلدرچین بخوره چیزای دیگه هم مؤمنه هست تا دو دوازده تا مثلا تو بحث استحمام تو روایات داره هر یک روز درمیان استحمام کنه اگر هر روز بره حمام لاغر میشه. این واسه افرادی که خیلی چاقن. اما کسی که نه یک روز در میان بره حمام، یک دوش آب ولرم بگیره. از صابون و شامپوی کم اسید استفاده کنه. یک دوش آب ولرم بگیره، ایشون تو روایت داره میگه فر بهی میاره. بسیار خب. دیگه و بیننده محترمی هم فرمودن که وقتی از جاشون برمیخیزن سرگیجه میگیرن، چشمشون سیاhtاری میره یا گاهی اوقات حالا یه مقدار فضا و براشون مثل حالتی که چرخش داشته باشه به این شکل ایجاد میشه. خواستم خارج کردم بفرمایید که چه دارویی هایی رو میتونن استفاده بکنن؟ چون اقسام سرگیجه زیاده و تا 50 نوعم شموردن. ولی قالبا سرگیجه های متدابل در افراد گاهی فشارخون پایین معمولا زیر نه گاهی فشارخون بالاست معمولا بالای 16 گاهی چربی خونشون بالاست کلسترول بد LDL یا تریگلیسریدش بالاست و گاهی شخص نه کمخونی شدیده کمخونی شدیده به چار سرگیجه تاریخ دید به نوع بیماری مگسک یعنی یه نقطه تاریک یه نقطه روشن یه نقطه تاریک یه نقطه روشن میبینه بهش میگن بیماری مگسک چشمی اگر خونی شدیده خب تو روایات اسلامی دانیم بعد هر قضا هفت خورما بخور فقر املاحش و فقر ویتامینش و فقر آهن آنمی فقر آهنش خوب میشه اگر کمخونیش فقر آهن نبود به دوازده بود خب گفتیم یه سیخ کوا بالاترین درصد ویتامین آب به دوازده تو گوشت قرمه اگر فقر آهن نبود فقر ویتامین B دوازده هم نبود اما فقر اسید فولیک بود و به جای اون اسید اسیدفولیک میتونیم بگیم همراه غذا چند برگ کابو بخور یا یه مش سبزی خورفه بخور یا صد گرم الا دویست گرم آب طاز یا بخار طاز لبو زمستون پاییز لبو بخور خب سرشره اسید فولیک کم خونیه به نوع اسید فولیکش هم خوب میشه گاهی نه این خب وقتی که این نوع کم خونی یا خوب شد سرگیشش هم خوب میشه اگر سرگیجش ناشی از چربی های مضر خون بود اگر مثلاً LDL بود حالا میتونه قرص گیاهی آنتوم یک عدد یا اینکه یه مش سبزی شیوید تازه یا مصرف کنه یا خوش شدنش یه قاشق مالاب پودرش باید میخوام پر می‌دی قورص گیاهی آنتوم. بله بله که بله. بله. بله. قرص شیویده زیاد نخورن شیوید یا قرص گیاهی شو یا خوش شدنش یه قاشق مالاب باخوری بذش تو بیش زیاد نخونن زیرا که کشید وقتی زیاد خورده بشه هم نور چشم کم میشه هم سستی زانو میاره هم شل شدن تاندونای پشت پا نظیر قصهای شیمیایی لوواسپام و دیاسپام و و کلروسپام و چهار مدل پام که هست اینا همه سستی زانو و شل شدن تاندونای پشت پا میاره طرف را میریه که تا میشه پله میاد پایین احتمال سقوطش هست روزا زیاده روینش اگر سرگیجه ناشی از کلسترول و بدبودیه مثال زن اگر ناشی از تیریگریسید خونش بالا بود یک عدد کدو و با پوستش میخوره بتونه به همراه دوغ شیرین کم چرب یا ماستشینه کم چرب بخوره یا به همراه سالاد کاوش بخوره خب چربی تیریگریسیدش بیاد پایین سرگیجش هم خوب میشه. حالا تحبهش هم خوب میشه یه بار سرگیجهش به خاطر کمخونی شدید حالا رسته بیماری های کمخونی جیدنکتیکی مثل تالاسمی داره یا مثلا همولیتیک فاویسم یا کمخونی داسی شکل داره اونجا حتما سه شیره میزه یعنی شیره خورما، شیره انگور، شیره توت به نسبت مساوی استطاقاتی میشه روزی سه پلوخوری پلو خوری میخوره اگه سنای ما صبح زهر شد نوجوان جوانه جوانه سه قاشو مربو خوری کودکه مخصوصا کودک بالای شش ماهگی و کمتر از دو سال میشه سه قاشو چای خوری صبح زهر شد کمخونی های شدید فرزن خوب میشه و او رو بینیاز میکنه چه از محلول های مکمل رژیم غذایی ایرانی مثل ماتریکس یا آلمانی الگومت یا آمریکایی فارماکوپه یو اس پی مال آمریکا که مت شده میدن از اونا بی نیاز میشه یه بار کم خونیش یه بار سرگیجش به خاطر افت فشاره افت فشار خونه بعد هر قضاش حتما چند عدد خورما بخوره سنای سن ما 7 عددی فشار خونش افت می کنه بلکه فشارخون دوتا هم میره بالا مثلا اگر نه باشه میاد یازده فشارخون انقباضی قلبش اگر فشارخون بالا هم باشه بالای شونزه اینها هم سرگیجه میاره و این پشت کرایی روی که درد میگیره وقتی بخوان سجده برن یا سرشون رو پایین میگیرن درد شدیدتر میشه هیجده به بالا بران مثل کسی که این بالای فرق سرش بین پشت سری و بالای ملاج، حالته ضربه‌ای میشه، زرباندار میشه. کسی کسی که آروم داره چکش بزنه آروم. اینجا حتما باید فشارخونه بیاد پایین تا احتمال سکته سکته رخ نده. چیکار کنیم؟ فشارخونه بیاریم پایین و سرگیجه ناشی از فشارخونه بالا آب بره. میوه گریپ فروت تو سرخ دارالدین، به همراه غذا. سبزی شنبلیله. همچنین چند منظوره فرض کنید هم چربیش بالا بود هم فشار زغال اخته اصلا استان قزوین و استان آذربایجان بزرگترین تولید کننده زغال اخته جهانه و ایران بزرگترین صادر کننده زغال اخته جهانه زغال اخته رو که بدون نمک بخورن سه خاصیت داره هم قنده خونشون پایین میاره هم فشار خونشون پایین میاره هم چربی خونشون از سه تا قرص شیمیایی نیاز میشه من خارجی مال ما رو بخورن خود ایرانی ها نخورن منتکل هست و پرسش دیگری مطرح شده پیرامون درمان اگزما بله. و اینکه چه گیاه دارویی برای درمان اگزما مفید و معصر هست توی محلول ها بهترین داروی حک خارش و اگزمای پوستین سرکه طبیعی سیب سرکه طبیعی سیبه محلهایی از بدن که خارش داره و اگزما داره با پنبه آغشته به سرکه یه طبیعی سیب چند بار بکشم بعد سب کنم در مجاورت هوا خشک بشه به ده دقیقه حاجقا نمیکشم اون التعابات و پوستی خارش خوب میشه همین تموش. لباس های زیر بچه و افرادی که اگزما و خارش پوستی دارن لباس های کامل یا کتانی علیاف کنفی باشه نخای نایلونی یا پلی استریل نباشه از صابون و شامپوی پر اسید هم استفاده نکن تو قوی ترین روغن در درمان خارش، حکه و اگزما روغن کوشنه که عربا میگن دهنل قص و قاف و سین و ت دسته داد این محل رو یه ماساژ بدن نمیشه دقیقه خوب میشه حالا این بندگان خدا مدل مختلف میرن خوب نمیشه یعنی باید داروشی میاییشون رو تکرار کنم سلامت بشی سلامت بشی بیننده محترم اما بیننده اجمندی هم مطرح کردن که فرزندشون بیماری پی سی داره بدنشو فرا گرفته به صورتی که پوستش مثل پوست پلنگی شده ده ده و درخواست کردن بفرمه گیاه داروی که برای رفع این معضل مهم هست. بهترین دارو برای این افراد اینه که یک شب در میان اینجوری شام بخورن. برگهای قازیاقی در منطقه آذربایجان غربی و شرقی میگن قازیاقی. اشتباه نکنن. میوه قازیاقی عقیمی میاره. میوه قازیاقی رو نخورن. برگهای قازیاقی رو، برگهای قازیاقی رو خورد کنن. تو برنج شلتوکدار یعنی برنج با پوستش، تو برنج شلتوکدار دم کنم این نوع برنج یعنی این نوع سبزی پلو بخورن به نشدی ها. این نوع سبزی پلو یک شب در میون بخوره پیسیش بیماری بررس ویتیلیگو خوب میشه. گی از با بررس نیست ویتیلیگو یا پیسی نیست بلکه بهحقه یعنی لکه های سفید سطحی پوسته اونجا هم که روایت داریم که امام رضا علیه السلام می فرماید. گوشت تازه گاب با برگ های در خورش درست کن. از گوشت تازه گاب با برگ های تازه در خورش درست کن. حالا توضیح فرمایش آقا بدم یک روز در میون نهار ها اینجوری ناهار بخوره کسی که بیماری بهق یا بهک یا لک های سفید سطحی پوست داره اینا هم درمان میشه ان شاءالله. خدا به واسو زره سلامتی. تصاویر کوتاهی رو می‌بینیم و خیلی زود برمیگرده این منظره استاد حضر ندوش. در درود بر شما بینندگان عزیز و بزرگوار، با افتخار خدمت شما هستیم در محضر استاد علامه دانشمند جناب حاج آقای زیایی که استاد برجسه و مدرس علوم اسلامی، طب سنتی و اسلامی هستند. و اما پرسش های دیگری که پیش رو داریم و خدمت مهمان عرجمندمون مطرح میکنیم ایسا میفرمونی؟ خواهی شکنم ذکر کردن بیننده عرجمندی که دختر خانم یک سالشون بناگوش یا همون زیر محل گوششون التهاب داره داروی بیوتیک مصرف کردن خب نتیجه نگیرفتن هر از چنگاهی هم ترشحاتی از گوششون خارج میشه پزشک محترم گفتن باید عمل بشه آیا گیاه داروی مناسب و مفید هست برای جلوگیری از این ترشحات ترشحات اضافی گوش یا واکس گوش روغن تناقشه طبی فقط سه شب شب اول سه قطره شب دوم پنج قطره شب سوم هفت قطره در گوش میچه کنم شب اول سه قطره شب دوم پنج قطره شب سوم هفت قطره در گوش میچه کنم نگه میدارم بعد روی همین گوش تا صبح میخوابه افونت داخلی گوش و وکس اضافی گوش همه رو میکشه بیرون از نظر ظاهری هم که پشت نرمه گوش مثلا ورم کنه ورم های بناگوش این حالت ها اونم که زماد آرد جوی سبوستار میگذارن ورم میخوابه حتی ورم های سرطانی دوبار فرد این دارو دوبار تکرار میشه زماد چی فرمودیم؟ آرد جوی سبوستار بعدم های جوه التهاب آنتیبیوتیک نمیدن فرد. اگر عفونت و چرک در بدن ثابت بشه اون آنتی آنتیبیوتیک تجویز میشه نه. اگر okay. نه اشتباهه در نظر همه متخصصین بیماری عفونی: افونی ما شکرم البته اینجازه کردن یک سال هست که این عفونت عفونت نداره التحابه ای ایجاد شده این بزخ... ترشوهات نمیشه آره، آره. یک سال هست که ایجاد شده این واکس اضافی گوشه شاید گوشش آب میکشه استخمام میره آب میکشه شاید یک سوراخ ریزی تو پرده سماخ گوشه حالا یه متخصص گوش و حلق و بینی معاینه کنه میشه یه پزشک عمومی نره یه متخصص گوش و حلق و بینی یا فوق تخصص حنجره این رو معاینه کنه پس اگر عفونت و چرک در بدن ثابت بشه اون وقت آنتی بیوتیک تجویز میشه اگر ثابت نشه تجویز بشه کلیه ها و کبد شخص رو خراب میکنه. اما پرسش دیگری که فرمودن دختر خانم هشت سالهی که گفتن موهاشون خیلی نازک و شکننده است گاهی اوقات این موها ریزش داره و بعد مثلا خیلی خفیف رشد میکنه برای تقویت موهای های نازوکه ایشان خواستن که داروگیاهی رو توصیح ایشون در صبحانه شیرخورما حلیم گندم گشتی به همراه نهار شامش سبوس گندم و جو و شلتوک برنج مثلا این برنجشونه مکارونیشونه آش آبگوشت سوپ شله حالا هر قضایی که بچه داره نهار شام میخوره هشت سالشه فرمودی؟ بله یک سوم قاشق چایخوری خوری یک سوم قاشق چایخوری خوری پودر سبوس گندم یا جو مییم رو قضاش و یک سوم قاشق چایخوری پودر شلتوک برنج، سبوس و شلتوک رشت مو رو زیاد میکن. نازکی و شکنندگیش تو خوراکیا با خورما و حلیم گندم گوش که سبوسش گذاشتیم. و رشت موش زیادم بشه، دو ساعت قبل از حمام روغن سیاهدانه یا روغن کندوش دو ساعت قبل حمام روغن سیاهدانه یا روغن کندوش بزنن رشد موی بچه هم زیاد میشه زیاد شامپو و صابون نزنن بعضیا ها زیاد میزنن ها مثلا میره حمام سه دست صابون پر اسید میزنن سه دست شامپو پر اسید موی انسان و پوست بدن مختصری باید چرب باشه و مرطوب وقتی صابون پر اسید یا شامپو پر اسید زیاد استفاده می‌کنن چربی لازمه پوست و مو از دست میره و ظریف شکنندگی و خردگی پوست بالا میره متشکرم اما مثلا یک صابون که زد یا یک شامپو بس زیاد هم هست بله بهبود پیدا سلامات خانم محترمی هم مطرح کردم که همسرشون زمانی که حالا مشاجره ای میشه یا خدای ناکرده استهلاکی پیش میاد اشیاء منزل رو پرز میکنن میشکنن و ضعف اعصاب دارن بله برای جلوگیری از ضعف اعصابشون چه دمنوشی چه گیاه داروی، چه نوع تغذیه، رو برداشته باشند بله اینجا حتماً صبحانه باید بخورن، حتماً شام باید بخورن و تو جیره صبحانهشون حتماً به جای این چای سیاه چای رای که هو فاریقونه و چای کوهی باشه چای گل رای و همچنین چای کوهی باشه بعد ولن که شد حالا با اصل آبیشن نعنا شیرین کنن بخورن مقوی اعصاب مرباشون رو که میخوان بخورن حتما مربای باهار نارنج مربای سیب و مربای به قرار بدن مخصوصا مربای باهار نارنج زهرا هرچی قضا میخورن بعدش یه قاشق پلو خوری شیره خرما حتما بخواد. شب ها هر چی غذا میخورن حتما شب قبل از خواب یک لیوان آب سیب تازه رسیده با یک قاشق پلو خوری عسل آویشان شیرین کنه بخور قبراق دو هفته سرپا میشه ان شاء الله بله هم گفتن فرزند کوتاه قامت دارن بره. برای رشد قدشون چه تدبیری میشه کرد اگر مشکل جنتیکی نباشه تو بحث هورمونی، یعنی هیپوفیز قدامی مغزش اشکال نداشته باشه یعنی خیلی کم کار نباشه تو ترشوه هرمون رشد یا متوقف نباشه حالت های چل بشه 90 سانتینم اگر این مشکل رو ندارن یا کم کاره بخواییم فعالش کنیم حتما تو جیره قضاییشون چهار مغز با اصل و سه شیره با شیر بزنن یعنی شیر تازه گاب شیرینش کنن با سه شیره یعنی با شیره خورما و شیره انگور و شیره توت چهار مغز, یعنی مغز یعنی پسته خام درختی بادام شیرین خام درختی فندق فندق و بادام هندی هر چهارتاش خام باشه اینها رو مخلوط با اصل کنن لازم نیست پودر کنن که ویتامیناش کم بشه و زریب باکتری و قارچ زیاد شه. نه همچون درسته ولی خام باشه قاطعه اصل کنن از این مخلوط هر روز بچه یه قاشق پلو خوریم به بخوره بدنی سریع رو فرم و رشد منهنی رشد قدیش سریع میشه اشاند. خواستم که بفرمایید افرادی که سرد مزاج هستن چه نوع تغذیهی براشون مفید هست اینجا حتما بعد هر قضا خورما بخورن که تو روایات شیه تذکر داده حتی تعدادش گفته هفت عدد و سالشی جلد هیفته چیزهای دیگه که تو گرمی هم مثل عسل گرم مثل زنجفیل گرم این هم تو جیر قضایشون باشه اما زنجفیل زیاد نخورن چون سبب ریزش سلولای مسه نمیشه. نوک قاشوت چای خوری کافیه. بله. خاطرم هست که راجبه رفع گرفتگی عروق در جلساتی از تاریخ فرمودید اطلاعاتی داشتید. باز همین پرسش رو مطرح کردن. بله بله. که برای رفع گرفتگی عروق بله چه گیاه؟ تازه بخورم غذاهای مونده نخورم فاست فود ها نخورن، سوسیس، کالباس، همبرگر نخورن، خیلی این دوتا مهمه. غذای مونده نخورن، فست فود ها نخورن. سوم، های گازدار، های شیمیایی، آبمیوه‌های شیمیایی، اینا براشون سمه. چهارم، دخانیات، مواد افیونی، قرصای روان برگردان از اینا نکشن، نخورن، خیلی عوارض داره. یکی هم داره های قلبی و انسدادی عروقی میاره. بحث رسول چیزی هم که کافینش زیاده مثل چای قهوه شکلات کاکوه نسکافه اینا گایت کم تحرکه گای اضافه وز داره گای استرس شدید داره خودخوری های میکنه بحث های علکی میکنه اینا همه عوارض سو رو قلب داره بس چیزایی که نرسای قلبی میاره ترک کنم داروش چند چیزه اولا کاهو بدون سس. هم به همراه نهار هم به همراه شام بخورم. شبا قبل از خواب اگر مثلا یک رگ قلبش گرفته یه استکان آب کرفس خام دو رگ نصف لیوان، سرک به بالا گرفته هر شب قبل از خواب یک لیوان آب کرفس خام بخوره خود مریض از روز سوم میدونه میفهمه خودش احساس میکنه که تنفسش راحت تره دست چینی میره راحت تره حمام میره نفسش نمیگیره راحت تره نشست و برخواستش راحت تره خواب شبانش هم راحت تره اصلا لازم نیست به ما بگن خود مریضی که دوچار انصداد عروق کرونر قلبه خودش مینه این حالاش داره بهتر میشه همینه ادامه بده تا بهبودی کامل حاصل شد پس داروی واقعیشون کاهوه بدون سوس و کرفس خام دعاش به جون امام صادق علیه السلام کن الخستو یصف دم و یطفا حرارت دم الکرفسو چهارت فایده میشماره چهارمیش و یفتح و, و صدت کهو خوردن خونه تصفیه میکنه حرارت های اضافی داخل دستگاه گردش خون و دستگاه گوارشو کاهش میده نمیگذاره مریض بیقراری شبانه و بیتابی روزانه داشته باشه و همچنین رگهای بسته رو کرفس باز میکنه همه رگهای بسته رو نه فقط کرانر قلبو. که سرگ اصلی شریانی خون رسان به ازال قبل فقط پخره و خامش خامش بهتر بهتره حاجام بعد از سرگذاریش بهتره انشاءالله. انشاءالله. و پرسش دیگه ای که مطرح شده خواستن بفرمید برای درمان چربی خون چه گیاه داروی مناسبه چربی خون گفتین یکی شیوید کم بخوره یکی کدو و با پوستش بخوره یکی زغال اخته گفتیم هم چرمی رو میاره پایین هم قنده میاره پایین هم فشار رو توضیح دارم برحال برسش ها رو بینندگانی که شاید در مباحث قلی درنامه های پیشین همراه نبودن با ما مجددن مطرح میکنند موضوعاتی که مرتبط با گبارش هست خیلی مطرح شده ده. از جمله اینکه گفتن میدهشون ضعیفه و خیلی ترش میکنند این بزرگوار ها به به کمر این بزرگوارایی که معدهشون خیلی ضعیفه مسئلهشون مسئله حضرت خانمایی که حامله و ماه دوم سوم بارداریشونه که ویارشون غالبا شدیده هر چی میخوان برمیگردن داروش آسونه قبل از غذا سوسنبر سبزی سوسنبر یا چای نعنا فلفلی این هم اسم دیگهش. دمجوشه این همه یه قاشق چای خوری پودره سوسنبرو میزه تو استکان روش آبجوش میزه. پنی لیگه ده لیگه سر میکنه. هم میزنه میخوره. بعد قضاشو شروع میکنه به خوردن. نیم ساعت برای غذا خوردنش وقت بگذاره. غذا رو خوب بجمه. بعد از غذا لم نده. دراز نکشه. بعد از یه کم راه بره. بعد یک عدد سیب درختی رسیده شیرین بخوره اگر یه بوسط نفخ شکن داره آبش بگیره یه استکان آب سیب تازه بخور باز یه مختصر قدم بزنه تا اینجا ترشاش خوب کردیم سردل، تخنه، پوده ریفلاکسش دیگه تکرار نمیشه. اما اگر اینایی که گفتم را آیت نکنه، هم سرسوزه معده پیدا میکن. هم ریفلاکسش تکرار میشه برگشت اسید معده به مریش تکرار میشه و همیشه فضای دانش احساس تلخی و سوزش میکنه ابتدای حل. حال اگر رو رخشین لبزم بد میشه. حال اگر مطفهوعش هم رنگش قهوه‌ای پررنگ بود یا رنگش سیاه بود. اینجا بعد از اینکه اون آپسیبل خود باز دوه کم قدم بزنه به اندازه یک نخود یا یک قاشق چایخوری مملایی شیرین بیان. یا قرص گیاهی شیری نوش بخوره زخم معده استعشارش هم خوب میشه اگر علاوه بر اینها این بنده خدا معده و روده استرسی هم داره اینجا باز بعد اینکه مونلای شیرین بیان خورد باز یه مختصر دیگه قدم بزنه حالا پودر پوست میوه بدوت قوی ترین دارو در درمان معده و روده استرسی پودر پوست میوه بلوت ما این کردستان اون پر درختای بلوط از استان کردستان بیا تا استان ایلام حالا منظوریم که اینا هم تو کشور هست لازم نیست زود برن سر جر لازم نیست حاجام اگر این قسمت ها کلید کلیت داشت التهاب روده داشت خب پودر سنجد به همراه قضا میخوره و پودر هسته انا التهاب روده هم خوب میشه حتی کلیت زخمیش کلیت زخمیش هم خوب میشه دیگه ما نیاز بشیمی درمانی داریم بسیاری عزیده ای که سوال بشتن جواب بدن برمولا در خونه تشکر کردن ما نیازی به تشکر کسی نداریم حاجبا ما پیروه امیر و حضرت زهره و حسنین این هستیم لا نورید و من کم جزا و لا شکورا ما حتی نیازی به تشکر لفظی هم نداریم حاجبا ما با هیچ در داخل خواهج کشورم دعوا نداریم اگر ده کلم بگن ما یک کلم هم نمیگیم امام صادق فهمودم ما میخواییم حق روشن بشه به حق عمل بشیم سفاس سلامت بشه. دو تا نفترم میخوام با اجازتون متفاوت مطرح بکنم حالا مباحث اعتقادی و اخلاقی در این دو موضوع بسیار بسیار, بسیار با اهمیته یعنی همطور که شما فرمودید برخی از افراد بد اخلاقی هایی با خودشون دارن که این درمیگرده به خلقیاتشون روحیاتشون نوع تربیتشون معارفی که دارن حالا اون علم و دانشی که تونستن بهش دست پیدا بکنن جایگاهی که دارن تعلیم و تربیتی که دیدن فضایی که درش وجود داشتن حضور داشتن اون میخوام بگم درمیگرده اما با توجه به این مهم که همه ای اینها دخیل هست ارز کنم از, از جمله مبانی اعتقادی و اخلاقی بفهمید که افرادی که حسادت میکنند خب اینم یک بیماری روحیه نه. نه. که حضرت علیه هم اشاره داشتید که افرادی که خود آزاری میکنند در یه جلسه ایرادی دیگر آزاری میکنند خب حالا اگر توجه بکنند به فرامین و توصیه‌ها ها و رهنموت های و معصومین میتوانند در حال در عملکردشون بهتر ظاهر بشن آیا واقعا افراد خانوادهشون میتوانن یک گیاهداروی رو به این نوع افراد حالا از کردم که سوای مباحث اعتقادی و اخلاقی ده، ده. که خود اون فرد باید آراسته باشه به اون موضوعات اخلاقی وجود داره که بتونن بهش پیشنهاد بکنن که قدری از اون میزان حساسیت و حسادت فرد کاهش بیدا بکنه شما احس شود که تا کنون بیش از چار بیماری روانی شناسایی شده در روانشناسی بالینی و طب تشخیص یکی از اون بیماری ها حسادت که توی روایات اسلامی تو بحث اخلاقیات یه قسم از اخلاق رزیلست اخلاق ناپسند اخلاق سیعه است سو ازن به مؤمنین و مؤمنات حرام گناه کبیره بعد این رو بروز بده یا قیبت میشه یا تهمت میشه یا تمسخاب این هم سه تا دیگه گناه کبیره حسد چشم دیدن نعمت موجود در دیگران رو نداره اما اگر قبطه باشه بسیار خوبه قبطه قینا به ته آخر قبطه بسیار خوبه چون استارت حرکت سهیه میگه فلانی چیزیش از من کمتر نیست این ما اینقدر متعالی شد حالا بروید نگاه کنه او چی متعالی شد میبینه مثلا کار خوب مستمر داره فکر خوب متمرکز داره دیدید چی داشت تلاشش پیگیره کاراش منظمه خب ای این قپته میخوره این همین همه حالتهای خودش درست میکنه اینا پیشرفت میکنن اما اگر مثلا یک شخصی نعمتی داره، بعد چشم دیدن این نعمت شته باشه. خب این اول خودش ها در میاد چرا؟ چون دو تاره روانی میشه. تو خورراکی ها برای اینکه این, این خودخورری ها و آشفتگی های ذهنش از بین بره و شادابی و تراوت طبیعیش برگرده دوتا مطلب وسش میذاریم یعنی دو تا شربت، یکی شربت گل بهار نارنج یکی شربت زعفران عسل، شربت گل بحار نارنج که با اصل شیرین کنیم اصل آبیشن یکی هم شربت زعفران یعنی شربت زعفران با اصل آبیشن که شیرین بشه سری رو فرمیان سلامت باشه و اما در این وقت محدود باقی مانده افرادی که به قول بفتنی ها خودمونی میخوام بگم دوشی هستن خیلی هیجان دارن جوشی هستن برای انجام حالا مسائل و موضوعات حتی ساده هم خیلی جوش میزنن یعنی از کوره در میرن مخاطب وسیله دست به میشه و حالا از میکنم که یک یا به دیگران استرس وارد میکنن خیلی جوش میزنن و یک شرایط روحی حالا بنده. خاصی دارن اونها بفهمی چه گیاثایی اینا ها جواب گای سوء تغذیه دارن گاهی استراب و دلهوره و گاهی استرس نگرانی مستمه هر کدومو باید درمان کرد همه اینا همزمان بخواد درمان شد اگه سنای ما باشه سنبولو یک یه قاشق چای خوری پودرش با یه قاشق پلو خوری اصل آبیشن مخلوط کنم به صورت شربتی به صورت چای دم دوش هر مدل دوست داره بخوره اینه بذاره صبح بخوره گل بحار نارنج یا گلبرگ های گل محمدی رو این رو هم به همراه اصل آبیشن گنجوش یا تازه جوش یا به صورت شربت شبها بخورن ولی توجه باید شخص داشته باشه که مدیریت زمان کنه چه زمان اختیاری چه زمان بحران که مدیریت در بحران داشته باشه اگر شرایط زمانی رو در نظر نگیره، زود از کول در میره و دست به یخه میشه. گاهی دست بزن پیدا میکنه گاهی الفاظ رکیک میگه، بعداً هم به دلا فاصله این گونه افواد پشیمون نمیشن. هم بله همینطوره. بله. همینطور. خیلی همینطور. همینطور. سپاسگزارم. دوستانم اشاره میکنن که یکی دو دقیقه زمان داریم. تو این یکی دو دقیقه زمان خواهش میکنم بفرمایید راجبه این موضوعی که مطرح کردند بعد از عمل جراحی ما سن چیکار کنیم که آثار جراحی از روی پوست محو بشه آیا چنین یه درایی دارویی وجود داره که کمک بکنه بله اولین مطلب اینه که از اون پزشک متخصصشون خواهش کنن از نخای بخیه‌ای که از روده گستان درست میشه استفاده بشه حتی در جراحی سطح پوست یعنی بخیه‌ی سطح پوست که اینها جذب پوست میشه و اثر جراحی رو پوست نمونه دوم این که محل جراحی رو یک روز میون با پماد نیتروفرازان از نیترات نغرس برد. تا محل جراحی عفونت نکنه یک روز میون از این پماد بکشه پماد نیتروفرازان بله بله یعنی نیترات نغرس اینا هم تازه از عبا علی سینا یاد گرفتن و با علی سینا آجه ها نقره رو میریخت تو آبجوش حسابی میجوشید بعد با دستمال تمیز آقشته می‌کرد به همین آب و آبجوش زخمای مریضه رو تمیز می‌کرد. یه قربی هم از ما یاد گرفتن این پوار حالا ماشاءالله ایرانی هم درست میکنم طرح جنری که داروهای شیمیایی ایران سلامت باشید خیلی سفاس گذارم همونطور که خدمت سلواران عزیز و عرجمند من دیرندگان خوب من از سوی کننده محترم برنامه حجت الاسلام والمسلمین جناب حاجی کاظم میانپور بوزش می‌خوام که به لحاظ کسرت و تعدد بیشمار پرسشون نمیتونیم همه سوالات رو مطرح بکنیم و مجموعه سوالاتی که نزدیک به هم و مشابه هست رو خدمت استاد علی حکیم و دانشمند محترم، استاد تپ سنتی و اسلامی جناب حاجی زیایی ان شاءالله به مرور مطرح می‌کنیم و پاسخی رو دریافت خواهیم کرد از تشریف فرمایه شما سریفان سپاس گذارم با آفیت امنیت بسند بسن. ملت شریف ایران و دکترای محترمم با آفیت امنیت بسند انشاند سپاس گذارم از حضور شما و از حضور دارم سلامت خوشاندمی که بهاران قرار من باشد خوشاندمی که بهاران قرار باشد ظهور مهدی زهرا بهارمان باشد یبنال حسن روحی فدا متا ترانا و نرا خدایا آتونان کن سر انجام کار تو خوشنود باشی و ما و اصدار. روز خوش خودم یه.